اینجا بدون من نویسنده و کارگردان بهرام توکلی بازیگران. فاطمه معتمداریا باز این مجله فیلمیات همه جا ولو 100 بار گفتم جمع کنین را از تو دست و پا صابر ابر نا که هر شب یکی دارین درو میزن میاد تو نگار جواهر یان. آخه نه این که من خودم خیلی بشناسمش اما تو فکر میکنم که خیلی پسر خوبیه پارسا پیروزفر ببین احسان جون همین الان بچسب الان چی دلت میخوام آتیه جاوید خود بد در همسایه‌ی زنجانی همونو 30 درصد گران‌تر بهشون می‌فروشی موسیقی حامد ثابت تهیه کننده سعید سعدی پسر خانواده احسانو میشنویم داخل اتوبوس از وقتی سوار این اتوبوس شدم فراموش کردم کجام چرا اینجا نشستم یا کجا دارم میرم بوست صورتم گور گرفته رگای سرم از شدت تب درد میکنن مطمئنم الان که دارم اینا رو مینویسم توی اون اتوبوس نیستم کم کم محیط اطرافمو حس میکنم راه راه خالی با سری شبکه های فرزی تنها چیزیه که اطرافمو گرفتن سعی میکنم بفهمم الان واقعا کجا اینا راه راه یه جایی که توش کار میکنم در محل کارش تو انباری روی جبه چوبی دراز کشیده بود بلند میشه میشینه با دست چپش گردنش رو ماساژ میده جایی که همیشه هست ای دقوی کجای بابا؟ چیه؟ نیم ساعت ماشین جلو در وایستاده من دارم دنبال جنابالی میگردم تو هم که تو عالم عبروتی چی بخوای؟ برگه ورود میخوا برگه کلن تحتیل یا بیگم وانه جلو دره خیلی خوب برو لیستو بذار رو بیز الو خودم یا امدی یا؟ همکارش میره احسان دفترش رو مگیر و داخلی کشو میذاره سنی نداره اما تاکید اون مریض احوان به نظر میرسه یه روز خوابیا حالا خودم دستش تخت شاسی که برقی دوش هست. سلام. سلام. کنار وسایل رو بر طبق لیز چک میکنه و به راننده میگه بیا بار. بیا رو, رو رو روی تختش هستی برمیگردن و چیزی روش مینویسه راننده سبار میشونه احسان برمیگرده طرف انبالی و از راه رو میگذره همه نه سری از کارگران کارخانه کنسرپسازی سازی که لیست افراد بازنشسته رو روی بورد میخونن مادر خانواده فریده بچه‌دوره سیاه به اونا نزدیک میشه و چند ثانیه کنار میذنه اون گوشه اشوری دونی, دونی اسم رو چک میکنه اسمش میسته یه از روی ساعت میکنه او اعتراض کاری رو بلند میشه مدیریتتون به طرف سرکار گر می اعتراض داری برو دفتر خودت رو ببین من هیچ کارم یه لیست من دادم منم زدم به دیوار آه. من کی اعتراض کردم یه نگاه به این بکن شما چه لیستو کندی خانم بده من لیستو آخه اصلا نه تو تعدیلیاس نه تو بازنشسته ها یعنی چی یعنی تو بلا تکلیفای امروز فردا یا اینوری میشه یا اون وری. خلاص سرکارگر میره چهره رنج کشید و تکیده مادر رو میبینیم که بلا تکلیف داخل کارخانه کنسپزازی مادر نشست و با دستکش رو بیهای خراب و از سالمه جدا میکنه همکارش سرا میگه فریده تو رو خدا اینقدر فکر نکن هنوز چیزی نشده که باز خدا رو کن که اسم تو تعدیلیه نیست فریده مده. لبخند ترخی میزند به کارش ادامه میده کارگری با چرخ دستی از کنارشون میگذری دختر خانواده یندو رو میبینیم که رو به آینهٔ دستشویی ایستاده با صورت رنگ پریده و چشمای درشت سیاه که قدر مای کوتای پسرونش از زیر شالش زده بیرون. با دست لرزون و خیسش دستی روی پیشونیش می‌کشه رو به مجسمه لاکپشت شیشهای کوچیکش که روی آینه آینهاست میگه روی پشتو رو برمیگردونه شیراب رو میبنده دونه دونه مجسم های شیشه هیموناشو از روی آتا بر و داخل صبت میذاره میاد طرف حال پای چپ شله با رو میره با دست پای شلش رو میکشه اقب رو روی زمین میذاره دستشو رو به در تکیه میده سعی میکنه بدون عصا راه بره امیکوبی شیشه اسمیو روی موکت و یک پشمیشکن. سبدو روی میز چوبی مبل میذاره. مجسمه رو پیدا میکنه و داخل سابد میذاره. به سختی روی مبل میشینه. نفسی میکشه. پای علیلش رو بلند میکنه. پاش بیهس حس میفته. سبدو روی میز بر میدار و با دستمال مجسمه ها رو با عشق نگاه میکنه و پاک میکنه حالا جای جای خونه مادر و احسان و یلدا رو میبینیم روی تاخچه اتاق یلدا یه سری مجسمه از باغوحش شیشه ای هست مثل گاو، خرس ماهی، خروس دلفین گوسفند و قو حالا تخت اصلی چرا خواب و روی تاخچه علوه بر مجسم های شیشه ای یه گردسوز کوچیک و گلدون طبی رو میبینیم چرخ خیاطی قدیمی روی میز چوبی مادر رو میبینیم که کنارش صندلی و چند تا کاموای رنگی و سبدی از پارچه است تخت توی بالکن که روشی سبد چوبی و کنارش دو کزه گلی بخاری روشن کروش کتری قدیمی لعابی و کنارش تک زندلی چوبی. میز چهار نفره چوبی قدیمی که گلون شیشه ایش تو گلدون شیشهایش دو تا گل روز صورتی کمرنگ و یک کاسه سفالی آبی هست. و حالا روی تخته عکس جوانی پدر، مادر، یلدا و احسان میبین. و همینطور یه ساعت قدیمی زنگدار، یه دسته گندم خشک توی گلدون سفالی و کتاب قرآن. کنابه سنافری رنگ رو رفته و بالاخره نمای بیرونی خونه قدیمیشون در شب که چراغی بالکنش روشنه داخل آشپزخونه‌ی باریک مادر با پورتغالگیر دستی پرتغال میگیره میخواد لیوانو از روی رفت برداره که کموده بیفته. رو هوا میگیرتش به سمت یلده احسان میره چرا نمیای آیم اومدم مادر باز این مجلفی بیاد همه جا بلوان سر بار گفتم جام کنی آره از تو دست و پا بیا مادر چرا داری با غذات بازی میکنی؟ غذاتو بخور بنا با پرتقال ده واسه خوب نیست اصطرال نکنم نیست چلقم که واسه پختم خوردی پیپ پیف نکردی؟ <تصفيق> تو چه ته؟ <تصفيق> چرا چرا اینقدر تو تونتون میخوری؟ درست جایده بخور غذاتو بفهمی چی داری میخوری؟ آدم تازه بعد از بار دهم بیست همه که غذاشو جایده میفهمه چی داری میخوره اینجوری تونتون میخوری نفت میکنه بعد میفتی گوشه اتاق آی دلم آی رودم آی مدهم وقت منه بدبختم هر چی جز میزنم انگار نه انگار اینم وضع پوشوندان خودته نصف و از سال سرما خوردی شبقمی امروز خوردی یا نه؟ احسان نه. تلویزیون روشن میکنه چه و بایی کار میشی چی... آدم بیا تا دو به غذا بخوره اینقدر از آدم فیلم برداری میکنن حسنی. اینقدر از روده و و جویدن اصلا نفت میکنم خوب بکنم نفت میکنم. پس دیگه نمیخوری نه؟ نه نمیخورم مادر برای اینکه اشتهای احسان و برانگیزه از توی قابلمه تعدیگاه رو زیر رو میکنه و با شیطنت یه نگاهی به احسان میکنه احسان با فله نگاه میکنه احسان به طرف میز نهار میره گلد رو دست دست, دست, دست, دست, دست دست تو کجا؟ من جرنه درست که همه سلام. بسارم صرف تو توی اخجار با میفه. شما خانم خونه ای من به کل فتی قبول نداری؟ ها؟ برمونت برم من چی میزی حالا خودم میارم. وقت داری بعد عروسید واسه کار خونه آشپزی کنی خیاطی کنی خونه داری کنی دختر تو سن و سال تو باید جوانی کنی باید زندگی کنی من همسنه تو که بودم تا به سونا با پدر بزرگت میرفتیم داهاتای اطراف سنندج چه تا آدم جون میگرف کلی هم خواستگار داشتم اونجا یه تاجر شکر بود تو عراق یکیشون توی شمال بود پسر خواب بود تو دریا مرد یکیشون هم توی داهتای کردستان بود دیگه پاساش داشت زیاد همون اون چی عرض گذاش پاسه زنش؟ اون تیش عروسی نکر من که کردم پس فقط بابای ما دادری بود دیگه تو خواستگارت نه رجای بابت اینجوری حرف نزن چشم اصلا آدم بهتری با دهنه پر حرف نزنه اصلا کلنه حرف نزنه چطوره ده بهتر ده بهتر مادر کلوسه گله چینیت چطوره خوبه دوست داری بله الحمدلله که دوست داری آدم باید یه هنری داشته باشه. هر آن ممکنه در این خونه رو بزنن دو تمن بیان تو. من نمیخوام کلفت دست مردم بدم که میخوام یه خانم تحویل مردم بدم. آ، نه که هر شب یکی دارین درو می‌زنن میاد تو. بس دیگه بی شدی یا؟ از اون تو وقت قضا نشده نشده‌ش که حق نداره حرف بزنه. این فیلم‌ها مقصودش پوک کردن. به خدا از این فیلم‌هاست. بابا تو خودت الان داری حرف می‌زنی. از دور و از بالای تلویزیون سیاسف در خوچی و اون سناتر رو میبینی که بلاخره در سکوت از آن صبح زود دو طرف جاده از برف سفید پوشه درخت بلند خوشک دیده میشه مینیبوس کارکانل کارخانی کنسپسازی به طرف ما میاد مینیبوس میسته با کارخونه ها پیادی می میشنه با ازده وارد کارخونه میشن مادر همکاری سارا در اتونه رخکن در حال آماده شدن هستند. مادر رویه میمکرد نشست و رودو باشنه که شاید ساره داره بس میمشه خواهی بایی الان با این وضعیت بلا تکلیفی که به من اضافه کاری نمیدن جاد میمونم کارتتم هم میزنم اضافه کاری من تو اتاق پیازه ها جا باشه باسه من فرق نمیکنه. اتاق کوفتم که باشه وای بیستم. خودت گفتی نمیتونی اضافه کاری بمونی؟ من گفتم اینطوری تو هم میتونی بری زودتر برسی به مهمونات. مهمون چیه؟ بگو لشکر یزید. هر روز که از فامیلش تهرانه محض نمونه یکیشون هم یه عزیز کرده نداره دوشا بمونه خونهشون. همگی هوا را سر ما. پس قبوله. جام اگه کارت نزنی ترابی بفهمی باید بخمشم. نه بابا خیالت راحت باشه. بهش مرخو. خودت چه دیگه؟ سارا فکر نکن چون قرار دوسه شب جادهمونم دارم ازت پول میگم این فقط قرضه ها سخت نگه جا کارت بزنه تو کمد برات گردو گذاشتم یاد نره ببرید دستت درد نکنه تو نمیای؟ برو من الان میام سارا میره. مادر کهخشکی پول ها رو در می رو میشماه. تو تواتاق پیاز رو به ما ایستاده بر صف نگاهی میندازه. کوی از پیاز پوشتشه و مقابلش توی زمت بزرگی پر از پیاز. انده یه ماسک پارچهیشو پشت سرش میبند میشینه روی سنده دستگیشوشو دست می‌کنه و تون تون پیازایی بزرگو پوست میکنه و توی زرگی کنارش میزنه دستوی مادر میبینن که یه لنگه کفش ساده رو گرفته و با عشق روح نگاش میکنه کارتون آماده هست دنگه کپش رو سر جوش میذاره دست شما درد نکنه تخفیفش هم حساب کنی کارش دراجی که. می زحمت کادرش کنی ما کادو نمیکنیم. کنیم پس اون بتونه به من بدی پوشمان گردو کاغذ کادر رو روی پیشمان مغازه میذاره کلو میده کم خانم راضی باشا خواه دست درد نکنه ده حالی که کپش رو کادو کرده از مغازه میاد بیرون از اسکینوس و دروگاهونی که شاید یه زمانی محل کار بوده میگذره و به سمت خونش میره. دستوی یلدو از توی مشمعی که پنبه میکنه برمی‌داره، تو روژ لبش رو پاک کنه. در روشو میبنده. سری صورتش آب میزنه و بهول خوش میکنه. یلدا، سلام مامان. باز رفت چپیدون تو. از صبح حالا من سگ رفتم پدرم در اومده. خواسته مامان جان کاش مرده باشم مامان جان. چی شده؟ یعنی تو نمیدونی چی شده دلم میخواست زمین دهن باز کنه میرفتم توش از دست کارای تو بیا بیرون کار دارم تو با استراب دستی به صورتش میکشو به هر میگم بیا برس میکنه. حل دستشه با حل تحموله روژه لبش رو پاک میکنه سلام سلام یلدا کموده بیافته که مادر سری میگیرتش تقصیر خودمه خودم لوست کردم حقمه تو چند سال یلدا؟ دونیم دونی من چند سرم. چرا؟ میدونم فکر می کردم بزرگی ولی شدی عین بچه کوچولو. حالا چی شده انقدر داری هرس میخور؟ هیچی نشده من شدم خر بندری یه سره کار کنم از صبح تا شب که دختر کچولو چخان پخان تحویلم بده مادر بیدارم انقدر هرس نمخورم اینقدر هرس نمخورم ای چشم هرس یال دمیر تو در درو میبنده خیر سرم این کفشار رو گرفته بودم پایان دوره گل چینیت بهت کادو بدم فکر کردم دخترم یه هنری یاد گرفته گفتم اگه یکی در این خونه رو زد اقلا در مقابل دیپلم فنی پسره یه چیزی داشته باشم رو کنم بگم بفرمایید اینم دیپلم هنری دخترم هولکو دیدم امروز دوره دختر خانم داره تموم میشه بعد خوشکو خالی فقط برم بگم مبارک باشه پس این هوله کجاست با هزار شغ و ضغ رفتم دم کلاست میگم خانم این دختر منو صدا کنین بیاد میگه ما همچین کسی اینجا نداریم بهش گفتم خانوم جون دختر من الان سه ماه داره میاد اینجا کلاس گلچینی چینی شهریش هم تمام و کمال دادم امروز هم روز آخرشه رفته دفتر دستکش آورده نگاه کرده میگه بله اسمش اینجا هست ولی سه جلسه بیشتر نایمده گفتم یعنی چی گفت خانوم تو جلسه آخری که اومده بعد راجب کارش توضیح میداده هول شده عرق کرده استراب داشته وسط کلاس استفراق کرده بعد از اونم دیگه نیماده. درکن ببینم یعنی دختر من نمیتونه تونه تا کلمه بین ده تا آدم حرف بزنه. یانت در در رو باز میکنه هولر و هوله رو پرت میکنه طرف مادر. پس این همه وقت که نمیرفتی کلاس کجا بودی؟ تو خیابونا قدم میزدام. یعنی فقط واسه اینکه من نفهمم هفته ی سه روز روزی دو ساعت تو خیابونا قدم میزدی؟ من به تو گفته بودم من جایی که آدم زیاد باشه حالم بد میشه. پس میخوای تا آخر عمرت چیکار کنی؟ بشین گوشه خونه، روزی ده بار این شیشه ای تو پاک کنی حرف بزنی؟ تو یه جاهالا دهم خورده. میخای تو آخر عمرت تو خونه قمبرک بزنی؟ خدا من دخترای عذبی رو دیدم که تا آخر عمرشون سربار خونه مادهشون بودن یه عمر سرگوفت زن برادر و شوهر خواهر رو خوردن تو بین خوب و تو خشنگی من چیکار کنم برای یلدا مادر روشو بر میگردونه یلدا دستش میگیره مادر پس میزنه یادم میاد طرف مادر رو میگه من من از یه کسی خوشم اومده یعنی از یه پسری خوشم اومده باز داری منو مسخره میکنی نه تو هم شدی عین برادرت میخوای بگی عاشق یکی از عکس این مجله ها شدی نه. نه دارم دارم میگم یه آدم واقعه واقعه پسر واقعه تو از در خونه بیرون نمیذاری حواش چه بیدی تو این اتاق آخه نه که من خودم خیلی بشنسممش اما که فکر می‌کنم که خیلی پسر خوبیه مادر یلده رو میبوسه یلده دستش روی صورتش میزه قربونت برم لپاد گل افتاده نه قربونت دارم من مدر تواش بسخونه گوجه فرنگیه رو توی سینک زفشی میریزه با یلده گوجه فرنگیه رو میشورن پس اون روزایی که نمیرفتی کلاس گل چینی تنها تو خیابونا قدم نویزدی نه من ندیدمش هنو ندیدیش؟ نه صداشو شنیدم تلفنی آره نه که من خودم باش حرف زده باشم ولی خب من صداشو من دیگه خول شدم یلدا یعنی چی یه روز اومده بود اینجا با احسان دوست احسانه من از اتاق بیرون نیومدم همین صداشون رو می‌شنیدم داشتن احسان یه چیزایی آورده بود یه سری نوشته بود آورده بودین داشتن می‌خوند و یهو شروع با آواز خوندن ولی رضا گفتش که تو اینا رو باید می شعر بگی من اینا رو به بخونم و اینا همطوری شروع کردن زفت کردن زی برای یادگاری پس اسمش رزاست ما من گوش گوشفای نستاده بودم صداشون بلند بود من دیگه دوست ندارم حرفشو بزنی برای چی؟ دوست ندارم دوست ندارم یه پسری بیاد اینجا بفهمش شلق به خدا الدا یک بار دیگه به خودت گفته باشی شلم کی با این فرق سرت که خولم منی منظریش مردم هزار جور ادریزو درست دارن یه جوری لا پوشونی میکنن که انگار نه انگار وقتی تو این همه خوبی داری فقط چسبیدی و یه چیزی که چی پاتو میکشی میری بینر ببرتون ببر یلدا به طرف میز نهارخوری میره و میشینه نوار आवाजشو داری چیا؟ نوار سر پسره دیگه گفتی داری نوار صداشو نه یلدا این جور موقع که قراره برامون مهمون بیاد میدونی چی بیشتر از همه هم میکنه این کناپه قرازه رو عصابمه آبروی آدمو در درجا میبره یکی از در این خونه بیاد تو فکر میکنه اومده تو بازار کنه فروشا مردشو ریخته تو ببرم من بالاخره اینو عوضش میکنم اون قدرام بد نیست حالا بزا غذا رو بیارم بعد مفصل برام تعریف کن قضیه چی بوده همین دیگه تو یه تو کارخونه <تصفح> از روی ریل میز کنترل از لبلوی لوبیاهای پخته خراب رو سوا میکنن و توی سبد میریزن. کارگری مرتب روی میز کنترل لوبیا میریزه. سارا تو چی میگی؟ همه جا یه قیمته یا برم یافتوباد در اون ترگیرم میاد؟ حالا حتما همون مدلی میخای؟ آره میخوام یه چیز تکی باشه. تو که غریبه نیستی من که همه خونه رو نمیتونم عوض کنم ولی کاناپه ی چیزی که تو چشه میخوام این پسره که وارد آه، میشه بره تو چش چشش داره میاد خودت لوس نکن یه کاناپه تکم دیدم خیلی هم خوشگله رنگش هم شکلاتیه زیرش هم یه عالمه کشو داره برای ملافه و لاهاپ و اینجور چیزا تختم میشه حالا وسطو رو تخت میخای چیکار آخه داماد آدم تا آخر شب بشینه سریال تماشا کنه. نمیشه بهش گفت پشو برو خونتون که نصف شبی تا اقدم نکرده باشن نمیشه فرستادش تو اتاق دختره باید یه جایی رو داشته باشم. بهش بگم بفرمای این شب بمونی اوه، تو نه به در نه به بر اینطوری دامادت روز میکنیم دامادم مثل پسر آدم میمونه چه فرقی میکنه اون آدرس رو به من بده ببین آدرس رو بهت میدم اما جان فریده بین خودمون باشه چرا؟ مگه خلاف کارش؟ نه بابا ببی تو یه پول مختصری به شرکت میدی هر چقدر خاصی لوازم آرایش میخوایی باید به هم سایز زن زنی میزنی همون سی درصد گرونتر بهشون میفروشی این یه جور بازاریابیه خوب چرا خودشون نمیروند از شرکت ارزون تر بخرن خب همین دیگه اگه آدرس شرکتو بدی دست ده زیاد میشه مگه تو نمیخوای قسط کن آپتو بدی من که نمیتونم پولشو یه جا بدم قیب میگی تو اسپلمن برای پنجات ما خرید کن باد به هم سایم میگی میاد چند درصد گرونتر استون میخورن به همین سام بگی یا نه اسمشو خریده حالا اون آدرس رو به من بده جان فریده اشگی نمیگی؟ اه ای این فکرست یه آدرس چرا منو قسم نخو؟ خیلی لقاب با وقت نداری بهش میگی؟ دادت درد نکنه بچه ها اون آهنگه رو که دوست داشتم سارا یه دونه از روش برام زده. نخندینا آهنگای قدیمی دیگه. مادر توش خود با این کودکشیم بیزه. رو داخل زنبت سوت میذره. همونجا کنار میز باریکی روی صندلی میشیه. یلده تو اتاقش از توی سبت با وسباز دونه دونه مجسمه های حیبونه شیشهیشو تو نور چرا خواب میگیره و با دستمال پاک میکنه احسان دور از چشم مادر تو بالکن کنار هره نشسته و سیگار میکشه رو پرت میکنه تو حیات اصمه یلده رو بر میداره و پیچاشو باز میکنه تا تعمیرش کنه احسان و دوستش رزا توی سینمای خلوتی نشستن و فیلم نگاه میکنن ما باید صدای فیلمو میشنوید رزا ریش و سیبیل داره بیافش معصوم و دوست داشتنیه متوجه شدم که دیگه منو سیدار من رو بزرگ صدا نمیکن اگه یک مدر لازم نشی چرا مدیس سراغم است چرا پسرا باید به اسکیپ باشه و به من ن باشه آره چرا ما را و بهش رو به احسان میکنه هم میکنه میشن می حالا زیر فیلم ما احسان و رو می بینیم که توی ماشین هستن رزا رانندگی میکنه و احسان سندلیشو کامل به عقب می خوابونه. سرشو به سندلی عقب تکیه می و میگه. گه یه حیجانی دارن آدم تو فیل با گریه می کنن می گب هم دیگر رو پیدا می هم دیگر رو چه میدونم زندگی میکنن کنن باشی صبح تا شب علافیم تون اون انبار مزخرف اون انبار مزخرف بی خود اون مردا ما رو باش داری با که حرف می که حرف نمیزنی همش آسمون ریسمون میبافوی ببین احسان جون همین الان بچسب الان چی دلت میخواد همین الان همین الان آره همین الان هیچ یعنی چی چی حال آدمو بم میزنی ها اون بدنشو پیش این تا هم همش ودو شدی بیا بردا صندلی راکو جوره رضا از یاد راکو به خدا تو کاری ندارم چیزی خوابیدم خود تو سرم جمع شه تو خون برس به مغزت بیشتر قاتی میکنی خلاصو شدی که؟ حالا تو گند خیلی بزنی چی بخواهی؟ معلومه یه همبرگر گنده با سیبزمینی بعدم دو کلون نمیتونه با تو جدی حرف اسم احسان بلند میشه و دسمان کاغذی برمیداره از نمای بیرونی ماشینشونه میبینم که به طرف سندیویش فروشی میرد داخل سندیویش فروشی درستم مندر خورد و خورایی کو میدن جارم میدن گفت لتزمینی رد میکنه داود نجفی آره تزمینی آدم رد میکنن موشابه های میره مشابه ها رو میار و میزره رو پیش مقدر ها پیش رفت میکنن رو نگاه نکنن آلو سلام خوبم تو چطوری؟ ساندیویچی نه با یکیم که دارن از مرز ردش میکنن تزمینی البته کیه؟ منم یکی دوبار زنگ زدن پس اون شروع می‌کنه هیچ‌وقت میره طرفه در. بیرون دعوا شده. رضا همچنان با تلفن حرف میزنه. احسان دعوای بیرون رو تماشا میکنه پس ببینم چی میشه. حالا خبر میده. یعنی تو دست برم درسم ماشینی شروع تو میدونی این مجره فیلم های من و ماما کجا گذاشته نه من که میدونم اون برداشته منی با تلیفون حق تبلیغ لبازم آرائشی رو که روی نیز چیده با... میکنه این داره پوس بعد میدونی دیگه چی دیگه چی توشه توش کاتالوگش نوشته که باز نبس من دست ددی توش گل همیشه بحار من هست من نمیتونم یکوشه این خونه چهارتی چیز بزنم خودم خاصیت جاودانگی دارم با شما حرف بزنم بسا انگار نه انگار نه ن... هر نوود نفری که دادن اینو استفاده کرده هر نوود نفر گفتن که ما مجله فیلم های من کشمه با چه جمعون شدیم الو چی میگی قط کرد قط کرد کی قط کرد میگم چندتا چند تا فیلم من چیکار به شما داشت کجا ریختیشون اونا چند تا نبودن 200 بود 200 چندتا چند تا نیست نه چند تا یعنی یه دونه دوتا بعد من قد این مزخرفات فیلم و سینما رو خوندی دیوونت موز. کرده من چیزی که بچم دیوونه بشه باهاش دلم نمیخواد کنار خونه خودم باری کنم حرفی هست خونه شما ببخشید کی داره کرایه خونه رو میده من مثل خر دارم کار میکنم وقتی اینجا شد خونه شما اصلا ایسون جون تو درست میگی همیشه همینجوری دیگه هر کی شما خوابه ساله هر کی شبیه شما, شما نیست خوله عصبیداونیه دیگه زنگ میزنی به در همسایه ما تیک جای همکارات اضافه کاری باری میستی پول جمع کنی کاناپه بخری برای اینکه یه موقع آقا داد و بشینه رو کاناپه کنه اسون تو رو بشور میکوشه اصلا این دختر از خوله جست سر کوچه جای میره تو افتتور غیر رفتار میکنین اون وقت من خولم. من غیر اصلا گفتم غیر عادی، چرا من هرچی بگم یه چیز دیگه میگی؟ گفتم غیر عادی رفتار میکنید آها، اون وقت تو که از صبح شب تو سینما ها شب تا صبح تو و جاد بول میزنی و حجیون میگی نتونستی تو این سه ساله یه طرفی از اون انبار کوفتیتون بگیری، آغلی بعد من که ماتیک میپوشم دیوونم ببین، من از خدام من رو یکی از اون انبار کفتی پرد کنه بیلون. دارم حرف میزنم کردی خیلی عاشق کارمم من دوست دارم شب که خوابیدم یکی با دیلا بگه تو سلام سوب بالا برام اونجا دوباره لیست بود و خروج امضا کنم خوب میکنم میخوام. من میخوام بنویسم میدونی میتونم بنویسم ولی زندگی شما نمیذاره من تکون بخورم دارم خفه میشم اسم کودیشو برمی داره کجا حالا کودیشو میبوشه دارم میرم خبر مرگم سینما وا داری دروغ میگی آره دارم دروغ میگم دارم میرم شیره کش معتاد شدم میخوام برم جرم و جنایت کنم مگه نمیدونی مامان من لای مجله فیلمم یه مسلسل قایم میکردم باش آدم میکشتم تا صبح بعد از صبح دوباره برمیگشتم شیر کش خونه. بعد برای اینکه کسی نشنیدم سیبیل مصنوعی میذاشتم مامان این سیبیل مصنوعی من کوش حالا دیدی فهمیدی چرا شبه از یون میگم برای که یک گروه مافیایی افتادن دنبالم بخوان خونمونو با دینامیت بفرستن هوا عوضش وقتی مردیم برای که حوصلمون سر نره از بیستا خاستگارت بگو هر چقدر واسه زناشون عرض گذاشتن تون دارتای کردستان یه چیزی بهت بگم مامال آدم بمیره بهتر از اینه که خل باشه ولی فکر کنه سالمه احسان میره مادر میمونه. یلده مجسمه ماهیش رو با دستمال میسابه مادر بغز کرده دستشو با صورتش می پشونه رو و گوشی تلفن رو بر می داره. در حال گریه شماره میگیره گیره کاتالگ الو ناهی جان سلام نمیدونم چی شد یه دفعه قد شد دستم خورد به تلفن. امید داره من گشتم کاتالوگشو پیدا کردم من خوندم نوشته که این تو 69 نه درصد درخشندگی داره هفتاد و نه درصد هم جوان کنندگی پوست همون شب دست احسانو رو میبینیم که چوب کبریت روشنی رو گرفته نگاش میکنه کلاه سوی شرتش رو سرشه از روی بلندی خاکی شهر که غرق نوره نگاه میکنه مادر سینی صبحانه رو روی میز میذاره و میره یدا؟ بله میری پنیر بگیری یا خودم برم الان میام دارمم حاضر میشه من دیرم میشه بودو من دو در اتاقشو رو باز میکنه احسان زیر پله دستشو می شده. مگه دکتر نگفته قدمای ریز بر دار قدم های درشتر بردار بذار مای چای پاد بازشه نه اون آخه دکتر ما اونجا شما بهش می دکتر. اگه ده تومانش زیب داده بودی تو هم بهش دکتر. موازو به پله ها باش زمین نخوری سلام سلام. احسان سوی شیرتشو میپوشه مدر شیر میریزه من دیشه اوالم خوب نبودی چیزی گفتم اخ نکن دیگه باما یه ماش بده بروی کنه خودت لوس نکن واسه چی گفتی شبا میری شیر کشخونه اوالم بد بودم جوری یه چیزی گفتم چر تا فرد گفتم دیگه شوخی موتاد شدن تو با من نمی کنی یا چاش من نمیدونم شباشی روش منتظری من مرض بابم سرایت کنه شیر شیرو بخور بذاری خود روده ها در قربونت برم تو از بچگی همیشه یوبس بودی بشین میخوام با حرف بزنم ببین مادر تو خواهرت خوب میشتسی اون نه اهل گله کردن نه اهل شکایته نه اعتراضی میکنه ولی همه رو تو خودش قصه میخوره من مادرم از چشاشینو میخونم پریشم رفتم میبینم یه گوشه اتاقش کس کرده داره گریه میکنه بری چی؟ والمان هم همین ازش پرسیدم گفتم بری چی گریه میکنی گفت واسه داداشم برای من گفت احسان داره تو این خونه تلف میشه بعد کی رو بهش گفته مامان خودش فکر کرده بچم همیشه حساس بوده بعد منم همیشه یافس بودم از بگو یه دقیقه بلند شما اونجا مادر من میدونم تو عمرو داره توی اون انباری تلف میشه هزار تا کار دلت میخواد بکنی هزار جا میخوای بری هزار چیز میخوای بخری اقتضای سنت هم هست نمیتونی. من مادرم اینو میفهمم اصلیر من و خواهرت چی کار کنیم منو که هرجری بلکنین این گربه چهار دست و پا میام زمین ولی خواهر چی تا وقتی اون سر و سامون نگرفه تو هیچ کاری نمیتونی بکنی هیچ جا نمیتونی بری. گیر خواهرت گیر یلدایی اونم کارش این شده روزی ده دقیقه بالاشه بره بقالی بعد بیاد بشینه توی خونه مجله بخونه و این مجسمه های شیشه ای با دستمال های پاک رو بشینه اگه به داد خواهرت نرسی به حال خودش ملش کنی از کف رفته ها احسان من چی کار باید بکنم مامان جان برای چی کار باید بکنم هیچی انقدر بی خیال نباش دینم شده یه حرکتی بره خواهرت بکن یعنی تو انبار به این درندشتی یه جوان درست و حسابی پیدا نمیشه نه پیدا نمیشه خب اگه به فکر آینده خواهرت باشه حتما پیدا میشه بلکن ماما ما توقعی نداریم مادر جوی یه آدم معمولی باشه تو رده های خوده فقط اهل دودو دم نباشه یه شب دعوتش کن شام بیاد پیش ما چیزی نه. نمیشه که شاید اصلا یلدا دیدش خوشش نایمد ازش اگر خوشش اومد که چه بهتر دو تا جوان با همدیگه آشنا کردی ببین من دارم کانوپر عوض میکنم نه اینکه خونه بشه کاخ ولی اقل عزیز در رفتگیش در میاد این پسرم که بیاد خونه نمیخوره تو ذوقش. به خاطر خواهرت به حرفم گوش بده احسان میره مادر عصبی بر میگرده طرف آشپزخونه خونه یلو دارو باز میکنه و میباد پنیر خریده به زحمت دارو میبنه از پله ها میاد بالا مامان. با لیوان شیر نخورده احسان بازی میکنه با تو فکره سلام چی شده احسان چشم بود با احسان سر رنگ کاناپه دعوامون شد میگه چرا میخایاین همه پول بدین یک کاناپه شکلاتی بخرین برین مغز پسهای بخریم شکلاتی که خوشگلتره از مرد جماعت چه انتظار سلیقه داری اینو با بروزار مادر پاک چطوره؟ خوبه یلدا تو اتاقش روی تخت نوار کاستی رو توی ضبط صوت کوچیکی میذاره زیر لب چیزی میگه نوارو میزنه عقب روشن میکنه تو صدا رو میشنوه حول میشه زبط روی پتوش خایه میکنه و خاموشش میکنه با هرس نوارو در میاره یه لحظه مکس میکنه تغییر عقیده میده دوباره نوارو داخل زبط صوت میذاره زبط روشن میکنه به نقطه خیره و میشه و با عشق میده. م... از پشت میله های مربع شکل کوچیک محوطه کار احسان احسان میبینیم که به صورت مات با یه نفر گلاویزه ادهی سعی میکنن اونا رو از هم جدا کنن رزا اونجاست. بعد از کلی تقلا بالاخره جداشون میکنن احسان تکه کاغذشو از روی زمین جمع میکنه اون چند نفر میرن آقا تا بزن سر صورت خوبه نگاه کن، باشه نگاه کن آخه سور سور کل خر بحشی بیام بیده ای جوابشو نده آخه نگاهش کن آخه من بارو تو دیگه نره تو چشه سرتو بگیر بنا رزا طرف دعوارو حال میده تو دستشوی. شوی زورم میاد دراخر یک کلاس سعوان نداره از زوره میتونه بخونه باید دوشنه من رو مزخره میکنه از گوشه سمت چپ عبروی احسان خون میاد ریزه با حمبی بتادینی پاکش میکنه نازک نارنجی دیگه خب یارو چون سواد نداره مسخره میکنه میخواد فقط یه زرد سرش گرم باشه. بدبختی بدبختیاش یه داش بره تو چربش میپری از تو بعیده از خودم لووتو دوباره یکی که پنبه تو بتادین آغشته میکنه و ابروشو پاک میکنه حالا ژل خورده سرتون نریک حالا به پیشونیش چسب میزنه بسایلو جام میکنه و داخل قفصه دور میذاره درشو میبنده حالا بخون ببینیم که چی نوشته بود باز شاید مدمخت حق داریم مزقرت کرده ریزا میره و در زرد غذاشو باز میکنه احسان ورقاشو مرتب میکنه این دن پختک که باز تو ها بردم در حالی که امیغا نگوش میده غذا هم میخوره در تمام مدت ذره جوان سعی میکرد خواهر میان سالش رو آراب کند سعی میکرد با او حرف بزند و کمی او را متوجه اطرافش کنند اما خواهرش مثل دیوانه ها او را نگاه میکرد مدام میگفت کسی دنبالش خواهد آمد و او را به سفر دور و درازی خواهد برد فقط درباره اینکه برای این سفر رویایی چه لباسی قد بوشید و چه نوع گردن بندی خواهدن حرف میزد دنبال لباس ابریشمی شمی بنفش رنگ محبوبش میگشت و دنبال گردنی فیروز رنگی که حفاظ نقره ای زریف ترم شکلی داشت گلدا توی بالکن روی تخت نشسته و لوبیا پاک میکنه همون ساختمون که پشت تصویره مادر کنار میز چخیتیش زمزمه میکنه و بافتنی میبافه احسان روی کاناپه دراز کشیده و فیلم تماشا میکنه سرش رو برمیگردونه طرف پنجره و خواهرش رو تو بالکن میبینه که لای کتابی رو باز کرده و داره میخونیم ماما من دعوتش کردم و. کیا مگه نگفتی میخوام در این خونه یکی بزنه بیاد تو تو هم اون یه نفر دعوتش کرده بیاد تو ماره دعوتش کردم شام اونم گفت باشه او از خداش باشه احسان مسخره بازی در میاری یا جدی میگی؟ مسخر بازی چیه؟ من خودت نگفتی به خاطر اللا تو واقعا دعوتش کردی و اونم حتمی میاد ما اگه راست میگی کی فرداشم؟ ای بابا فکر نکردی من باید تدارک ببینم؟ تدارک چی با آدم راحتیه راحته چیه چرا همون موقع که دعوتش کردی به من نگفتی از صبح تا الان اینجا ولو شده هیچ چی نمیگه حالا اب نداره من خودم فکرشو کردم دو جور غذا میذارم یه خورش یه سوت ژلم درست نمیکنم فکر نکنه سنگین گرفتیم هول شدیم چقدرم هول نشودی تو خدا احسان با خدا کار داری یا با احسان به خدا اگه فردا شب این پسر بیاد این این کاناپه قرازه بشینه من از خجالت آب میشم میرم تو زمین منم من که کسی آب نشه بره تو زمین مونده قسط اول کاناپه رو دادم فردا کاناپه میاد چی میگی؟ هم داشی. خب منم میز از خانم شیرازی میگیرم خودم هم میرسم خونه رو تمیز کنم. الی قربونت برم چقدر مهربون شدی. اسم پسرش چیه؟ رضا. سیگاریه؟ نه، معتاد نیست. ببین احسان، هم. اون روز که وسط حرفای من بلند شدی رفتی، میخواستم بهت بگم یلد راجبی یکی از دوستای تو با من حرف زده همونو دعوت کنی بیاد. همونو دعوت کردم بیاد. یلدو چیزی بهت گفته؟ نه من خودت نه قربونت برم من خودم ده دفعه نوار صدای رضا از اتاق یلدو شنیدم شما فکر می‌کنی من هیچ چیز حالا اون هیچ چیز از کجا مطمئن سیگاری نیست دوست من مگه نیست مامال رفیقم دیگه اگه بخواد جوری خودم سیگار میکشی؟ آدم اگه بخوای یه چیزی رو لاپوشونی کنه که کاری نداره مثل خودت که یه جوری سیگار می‌کشی من نفهمم حالا چرا شما نفهمیدی حالا هر چی نمی‌خوام دخترامو بدم به یه معتاد بدی به یه معتاد عروسی رو انداختی شما گفتی یه شب دعوتش کن بیاد اینجا شام منم یه شب گفتم بیاد شام همین حالا درآمدش چقدر هست تقریبا مثل خودم و خیلی نیست ببین مامان این فرد شب داره میاد اینجا از قضیه یلدو خبر نداره نگه من بچم نه میگم حواست جمع باشه خدا کن والا خیلی خوشگل مشکل نباشه یلداتونو خوشو جمع و جور کنه نه خیلی هم زشته وا یعنی از روز کادم روش نمیشه به فامیل نشونش بده نه خوب متوسط خودش تیپش، مواش، هیکلش، آیندهش، همه چیش متوسط خوبه؟ آره خوبه متوسط خوبه یلده جان مادر رختا خوش شده آره میخوای برم جمعشون کنم؟ نه قربون شکلت برم خودم جمعشون میکنم عزیزم مادر میره یلده ها همینطور مات میبونه به برادرش نگاهی میندازه موضوع رو نفهمیده میره تو اتاقش رو در احسان در سکوت فکر میکنه، تصمیمی می میاد روی پشته بوم زیپه سوی شرتشو می بنده مدر داره رختارو از روی بند بار میداره. بر می ماما جانم ببینی برای این قضیه فردا شب و, و به یلده باشه این که مثل بقیه نیست بهش فشار میاد اذیت میشه. یعنی چی؟ خب آخه ما اینقدر دوستش داریم مثلا بعضی اقاط یادم رو می این شله صد دفعه گفتم به بچهی من نگوشل نه میدونم خب من دارم دوربرمون نگاه میکنم دیگه مثل بقیه دختران نیست بله خواهر تو با دخترای دیگه فرق داره برای اینکه مظلومه خانومه نه میدونم من خب یه چیز دیگه بگم یکم ترسو خجالتیه چهار تا آدم بگه جا باشند دو کلم حرف میمیزن همه زندگی شده این ارسک شیشه گشت و شما داری خودت می‌بینی دیگه خب, خب. ببین، اگه قریب غریبا از بیرون ببینن، به خدا حق دارن بگن این غیرعادیه. غریبا ها غلط کردن به خواهر تو بگن غیرعادیه. کاش همه دخترای عالم مثل خواهر تو باشن. اصلا این حرفا به کنار. این کاناپه‌ای که ما در زحمتش کشیدی کی میاد؟ فردا. ما تو برم من. همین تموم. مادر میره. احسان روی تخت میشینه. فندکشو از تو جیبش برمی‌داره و باش بازی میکنه همیشه روی تصویر احسان صدای مادر و بعد یلده رو میشنویم و حالا میبینیمشون که روی تخت یلده دراست کشیدن ولی من میخوام تو و داداشت خوشبخت بشی تو عروسی کنی احسان عروسی کنه بعد دخترتو پلمفولتو بغل کنی ازا تو بذاری کنار حیات بعد برای من از این بر حیات بری اون بر حیات بعد من بازنشسته بشم یه روز بیام خونه تو چند روز برم خونه احسان چرا فرق میذاری از الان یه روز خونه من چند روز خونه احساما آخه مردم میگن خودش پسر داره بعد میره خونه دامادش میمونه آخه دختر مال مردمه دیگه واخه خیلی خواب صدای فیلم رو میشنویم کم کم تصویر از اونا دور میشه و میاد رو صورت احسان تو سینما چهرش ما تو جدی. تصویر از چهره احسان کم کم دور میشه و ما حالا سالن سینما رو میبینیم می‌تونم یکی دو نفر کسی اونجا نیست. می‌تونم وایکیو دستت رو بکشم. ما فقط سی فیلمو می‌بینیم. ما با هم دوست بودیم چرا نذستی به دوستیمون ادامه بدی؟ ولی من نمی‌خوام باشم. با ولی من ولی حالا اجازه ندادین این کارو بکنم. من عاشقتم. ارزش داره که به خاطرش مبارزه کنم. اسکیپر ارزش نداره اون آدم خوبه. خرس، منم آدم خوبی نباشم هیچ هیچکس خوب نیست. ولی ببین اسکیپر مرده و من زنده‌ام. من کی قرب بی‌زنده‌ام. ترس ترس؟ صبح زود از دور می بینیم که میلیبوس کارکنان کارخانه کنسپسازی از همون جهت به طرف کارخونه میاد. میسته کاریه رو پیاده میشن دست مادر رو می بینیم که پیاز بزرگی رو تو اتاق پیاز پوست میکنه اون تنهاست پیاز پوسکنده رو داخل ظرفف بزرگی که پر از پیازای پوست است میندازه. دوباره پیاز دیگه رو بر می رو پوست می‌کنه. مادر به طرف مغازه قصابی میره. سلام علیکم سلام یه کیلو خورش. حالا تو می به فروشیه سوا کردنی نیستم سوا نکردم که خراباشو گذاشتم سر جاش دو کیلو بشه می زمت هزار پوچت این بار تو سوپرمارکت نوشابه و جوی پرک بر میداره خریدش رو جمع میکنه و میره مادر تو نواری رو توی زبط سوت و خوشحال زمزمه میکنه ظرف میره چیده رو از روی میز بر می و به طرف پذیرهی میره ظرف میوه رو, رو روی میز کناپه میذاره توی زرف خیار و سیب و پرتقاله. یلدو جان مادر کفش پاش میکنه. حالا بلند میشه و میره طرف دستشویی. یلدو مات مونده. چیکار میکنی دو ساعت اون تو؟ چرا رنگت پرید پرپونت بر برام؟ خب تو آدم هول میکنه من چیکار میکنم بیا دادا روی صندلی بشین. ادم فرش اینقدر تدارک دیدینم، منم کاناپه رو عوض کردام، فکر کنه یه چیز خیلی مهمی قراره. من دوست ندارم, ندارم کسی تو رو این ریختی ببینه ها. من گفتم بهت من کفش کاشنه بلند نمیتونم بپوشم اصلا عادت ندارم اذیت میشم باش میخورم زمین اصلا من برای چی باید اینا رو بپوشم راحت بهت بگم واسه اینکه قدت کوتاه خوشکل خانوم بلندشه زودتر حاضرش الان آقا رزا میاد رزا یعنی کی ماما اوه خدا مرگم بده اصلا یادم رفت بهت بگم احسان کی دعوت کرده رضا یعنی همون رضا دوست احسان تو انب خدا من چیزی بهش نگفتم خودش فهمید یه روز اومد گفتش رضا رو دعوت کرده بلند میشه میره طرف اتاقش و درو میبنده خیلی بد کاری کردیم مامان من با تو درد دل کردم و من اصلا نمیتونم اصلا نمیتونم بیام بیرون. چیچی رو نمیتونم بیام مگه قراره چیکار کنی یلدا به خدا اگر بخوای مسخره بازی در بیاری آبروی منو ببری دیگه اسمتم نمیارم در باز ببینم قشن مثل دختر بزرگ میای بیرون قشن سلام میکنی شامه تو میخوری دوتا تو جوک تعریف میکنیم دوتا خاطره تعریف میکنیم مهمانی تموم میشه میره همین فهمیدی؟ ما محالم داره به هم میخوره منم داره حالم به هم میخوره از دست کارای تو ولی به جان خودم این دفعه نمیذارم بیاری ریالدا ببین من هیچی بهت نمیگم ولی اگه تو مامانو دوست داری زودتر خود تو جمع جور کن بیرون سلام مامان سلام به فر می نگری خیلی خوشم میاد سلام حال شما؟ احسن چون چرا دیر کردین مادر تو امبار کارو توی کج شدی که بیای تو زدی چرا با ایستی تو؟ کاش شما برین تو ایون من الان یه چای میارم بر تو ایون چی؟ نه تو خونه که بوی غذا پیچیده الان در پنجره ها رو باز میکنم بس داد تو میکنم مادر بزرگ در اتاقشو باز میکنه یه لحظه پشت در میز گذاشته بود در حالی میده میز کنار میکشه و میاد تو شبی بیرون با چوخی نه. دستم دیگه میکنی ماما میای میشینی تو سالن هم در نمیاد. دستم فکر کن جیغ میزنم. جیغ بزن. منم جیغ میزنم ببینم صدای کدوممون بلندتره. چی شد؟ چرا جیغ نمیزنی؟ مادرت خیلی زحمت کشیده. مگه میهمون غریبه نیستم؟ لا خودش دوست داره. اصلا به تو ربطی نداره. کلا مهمون دوست داره. این کی داره میخونه؟ نمیدونم. این روزا رفتم پیش اون مهندس، باهاش صحبت کردم. مالی درسه باز حرف میذارم. میگم رفتم پای صورت کم گفتم تا آخر ما بیشتر نمیام حواظت به منه؟ بله همون قضیه داود نجفی دیگه تزمینی ردت میکنه آره آخر بر کلی ایرانی هست تو کار فیلم و تبلیغ و اینجور چیزا میرم براشون یکم مینویسم آره یوش یوش, یوش یه طوری میشه دیگه از وضعیت الان هم که بهتره. اونا توی بالکن نشستن ریزا چایی میخوره از کجا می بهتره؟ ها؟ میگم از کجا میدونی بهتره؟ هر وضعی از وضع الان من بهتره. تو میگین که کلدن حالت خوب نیستا. بفرما بوده تو چیزی باره ما کنی دیگه. احسان ببین مامان من ده چیزی ده از قضیه اینا نمیدونه. ای وقت سوتی موتی نی. تو همه وجودت سوتی نگران منی. باشه ببینم بابا. بورا همه تو حال نشستهن. گلدون دست به سینه نشسته و به نقطه این خیره شده و استراب داره. ریزا با معصوم و دلنشین داره نارنگی میخوره یلدا یه نگاهی به رزا میندازه. انگار اونو قابل قیاس با خودش نمیدونه من دو سه بار دیگه هم اومده بودم خونهتون شما تشریف نداشتم. من کارم زیاده یلدا جونم که همش تو اتاقش کارای مطالعه و از اینجور چیزاست ولی شام امشب کار یلداست یلدا از دروغ مادر مات مونده دستشون درد نکنه من اگه می انقدر تو زحمت می اصلا مزاحم نمی شده اختیار دارین شما مثل احسان چای بیارم نه ممنون همین نارنگی خوبه نوش جونتون بفرمای شیرینی چشمت من. احسان از دور نگوشون می کنه یلا یلدا اصاشو برمیدار و به طرف آشپزخونه میره یه سکندری میخوره مادر به کمکش میاد یواشکی میگه هیچی نیست. حالا چه وقت رو افتادن بود یلدا میاد تو نیست از گاز بوده فشارش افتاده بچم نه کنم فرشون جا جمع شده پاشون گرفتش منم اومدم تو نزیگ بود همونجا بخورم زمین بله با افتخار نگاهش میکنه با تعجب میگه قد چنگا پورا شوه سو؟ تاثیر مامان رفته این کفش سیندل رو گرفته نفوشم ناراحت میشه همیشه اصلا واینا راه رفت گردم دلنمندیش هم که داده بهت آره ببین یلدا اصلا مثل همیشه بیا قشنی سر میز غذا تو بخور انگار نه انگار که رضا هست انگار خودمون سه نفریم باش خب اگر ناراحتی راحت نیستی اصلا برو تو اتاقت رضا از اونها نیست که بهش بر بخوره خب خوبی من خیالم راحت بشه خوبم یلدا میره طرف پذیرانی احسان با نگرانی نگاش میکنه یا برق میره صداشون از تو پذیرایی میاد احسان به اطراف نگاهی میکنه ایوا خدا مرگم به دلان چه وقت برق رفتن بود احسان ما در برو به این کنتور ما پریده یا نه تو رو خدا ببخشید آقا رزا خواهش میکنم این چه حرفی خوب شم روشن میکنیم شم دارین بله یلدا جان جایو شما رو به آقا رزا نشون بده چشم آبرو رفت این همه قصه رنگ فسنجون زحمت کشتم و بعد همه حالا باید برق بره. همه چی واسه عید نوروزیئه. آخه برق رفته چه رفته رو به عید نوروز مامان؟ چه قصه خوبی احسان خیلی هم ملاحظه کاره. با گلدو دارن شم پیدا میکنن. رفتید به کانتور سر بزنید. بلا شما بلانشووار دیگه همسایمون هم همه برق داره. کبریت اینجاست؟ بله. شما رو پیدا کردین؟ گلدو خانم چند تا پیدا کرد. شما معمولا نه داد ندارین جیبتون کبریت بذارین. نه جیب تو مگه؟ هیچ همینطوری بیا این تو دیگه احسان بیا تو بفرمایید رضا تو هنوز نرفتی قبض برق بدی نشد نه, نه. بذار من میرم میدم حال خودم تو گیجی باز یادت میره بده من میرم دیگه رضا الان که پیشم نیستی خودی تو بخو احسان تو شب نشست و فندکش رو روشن میکنه مادر گرسوزو میاره احسان بفندکش گرسوزو روشن میکنه مادر شیشاشو میذاره از ایوون خونه و از پنجره پنجیرایی تو رو که همه دور میز و گل میگن و گل میشنفن و زیر نور گرزوز شام میخورد. روز ریز در کشوی یه موبایلش باز میکنه. شماره میگیره. اون مقابل در خونه احسانه از در خونه فاصله میگیره این نگاهی به ساختمون مینداه خبری نیست. این گلدوست که در خونار براش واسه میکنه. سلام. سلام. خب هستی؟ ببخشید دیشب خیلی بهتون زحمت دادم. نه شما و مامانم درست کرده بود. <تصفيق> احسان خونه است. قرار بود بگم دنبالش هشی زنگ میزنم گوشی می نمیداره. احسان موبایلشو جا گذاشته. خب میشه اگه خبری ازش شد بگین یه زنگ به من بزنه. گلدو نوری رو از تو جیب پیرهن گلگلیش درمیاره رو به رضا میده و آروم درو برش میواد. بگم بهتون زنگ بزنه رزا پاشت در میمونه نوارو تو جیبش میذاره مجبور میشه بره یلدا یه دستش روی در گذاشته و صدای بستن در خونه رو از دور میشنف مادر تو پارچه فروشی با موبایلش با یلدا حرف میزنه چی دا. چیشو دارن میبرن رو میزی رفت گوشی، یه در گوشی گوشی رو میذاره عصاشو شده سندلی تکیه میده و میشیه چند و شیشو هشته میزه نهار خودی رو اندازه میگیره و میگه خب ببین این همون نوود در نووده که خودت گفتی ما فقط چی شد آغارزا اومده بود اینجا. اوکی؟ خانم ببرم پارچات. من داشتم شما رفتی کار کارخونه. واسه چی اومده بود؟ خب اومده بود دنبال احسان. اینا قرار داشتن. احسان رفته بود. نیومد که تو مادر جون کجا بیاد؟ میگم من بچه‌ام ماما. خب چی گفت؟ تشکر کرد از شما واسه شام دیشب و همین دیگه. یالدا میره. پس آخرش هم باورش نشد شام کار تو بوده. یالدا از خودت هیچی نگفت مامو ببین من نوار صداشو بهش دادم همون که با احسان ضبط کرده بودم خوب خوب اون وقت گفتی روزی صد بار نوار صداشو گوش می کردیم نه ناخ، میدونی چی شد؟ اومد بالا من خودم بهش گفتم بیاد بالا گفتم بیاد برای اینکه موبایل احسان جا مونده گفتم مثلا تو می‌خوای بهش زنگ بزنی وقت نگرانش می‌شی این داره میره کارخونه بهش بده دیگه به خاطر تو گفتم و دیگه نوار صدارم بهش دادم ولی موبایل و یادم رفت موبایل احسان رو بهش بدم اینا همش با قاتی قاطی شده اون گفت که لابلای سیمی تلفن گیر کرد. یه بار اندازه بگیرم قرپول درمیل تا چاسته ترمینال ز مودل حالا چیکار ب بزر... تاخشر اندازه بگیرم یا میخوای همه رو دوباره اندازه بگیرم بت زنگ بزنم چون اینا الان همه با هم دیگه قاطی شدن اگه این الان تمام میشهود سوز... یدا؟ <تصفح> چیکار داری میکنی؟ خودم به زیم زنم بگو نبارره خودم زنگ زن احسان با لباس کار یکثره از روله باریخ کارش عبور میکنه به روزا می تو چطور تا اینجای بر؟ من قرار ندوم بیام خونه دنبالم به سرم اومدم بیرون دوباره کارهای تصفیه است گیشه باید ببرم خودکار دادی جناب وقتی میزنه به سرت موبایل تو با خودیت به بعد که کرد. من نمی‌دوستم که گاز رو میکنن می‌کنن. من می‌رفتم دیگه خودم قبضو. چیزی نبود که حالا یادم بند از من پول اینو باید بدم. کجا حالا؟ بریم چند تا امضا دیگه مونده بگیرم تمومش. بعدش کجایی؟ نمیدونم احسان میره رزا تو محل کارش نباره زب شده صدای خودش و احسان داخل زبت سوت میذاره از توی بلاس برای خودش چون میدرزه در وی رو میخوره بیکنه شاید به دار روز و شب باشور و طرف چون مرغ عاشقی دل بیدار من هر کشت هر صوبی قرار شاید بنگرد روخ دلدار من یلده توش بسخونه نشسته یک گل سر کچیک صورتی کمرهی به ماش زده انگوشتاشو روی قطرات چاییش که روی میز ریخته میکشه فکر میکنه شاید به رزا لوپاش کمی گل انداخته مادر میاد و میگه یلده آفبر سینی بزرگی کجاست تو بالکنه رو تخت. نمیشد حالا همونجا میموندی چای تو میخوردی نه آخه خب مایه کوکو تموم نشده تنوست حالا تموم شده ببرمه نه نمک فرفرش رو نریخم خدا ما میدونی چیه این لیوانه ترک خورده مادر بی اتناب حقیل دامی رو پذیره آقا رزا شما که چی نخوردین یه چیزی بذارین دهنتون همه چی خوردم ممنون نوشه جانه تو نقلا اون شیرنی رو بخوری چند مادر بلند شما در گردو رو ببر تو ایوون بشکن الان پایینیا صداشون در میاد حالا میرم پاشا دیگه دیدی من میرم نه رو نه به جان یلدام نمیذارم شما اینجا به تعارف من عادت دارم مغزه گردو رو درسته در بیارم این احسان باون. بلده احسان باشه دیگه خب منم درسته در میرم زحمتت در نبا نه چه زحمتی اصلا نه بخوا شما برین توی ایوون کنم همسای پایینی نیستن میخوای تجریف داشته بشین همینجا چه بتر دست شما در نکن. احسان احسان میره مادرم بدنبالش رزا میمونه با سینی گردی چه دوستو تاکی چی کار میکنیم آمان چی دارم میکنم احسان به مادر چشم برگه میره و میره طرف پنجره مادرم میره تو چای بریزه احسان میره طرف یلدو اون طرف میز میشینه تو رو خودم ببخشین آقا رزا شما افتادین به زحمت نه بابا زحمتی نیست میگم شما این مجسم شیشویای رو دیده بودین اون دفعه که اینجا تشریف آوردین نه اینا یه آلمان بقیهشون تو اتاقشن قشنگن نه بله خیلی قشنگن نه ریزم از اونجا به چشم میان مادر بیا اینجا ببینشون؟ حساب بلند میشو میره طرف مادر از بچگی اینا رو جمع میکنه خیلی بامدم بفرمین بشیرین ببین چقدر با سلیقه است؟ برق میزنن یه سر نشسته داره این رو دستمال میکشه. یه دونه از مجسمه ها رو از توی سبد بر میدار و نگاه میکن عجیب به اینا علاقه داره از بچگی هرکی از اینا تعریف میکرد، کیف میکرده. میخواین شما سب کنین وقتی خودش اومد بگین چقدر از اینا خوشتون اومده مثلا ازش بپرسین که چند وقت اینا رو دارین اولین بار که اینا رو به کادو داده از اینجور جور ها دیگه خودتون که میتونین یلدا یادتون نره بگین چقدر تمیزه ها خودتون گفتین برق میزنه یلدا جان کجایی مادر آقا رزا چند تا سوال داره نزد مادر اشاره میکنه الان میاد یلدا جان گلده خانم مادر میره رزا احساس خوشایندی نداره محذبه مادر گلده رو به خودش میبره احسان در آشباز رو باز میکنه و میره تو پشته بود برو تو مادرجون جون. رزا چند تا سوال دارن ازد منم انداختمشون به زحمت شستن دارن گردو کنن. تو رو خدا ببخشید بشین مادر آنجا خواهش میکنم دست شما درد نکنه میبریم میبینین فدایگه کافیه همین آها چهار تاشو فقط شکوندم ما. خوبه ما داریم این چهار همین بسته لیش رو درسته در نمیمن ایبی نداره میریزم ایشون تو کوکو کو. مادر تلویزیون خاموش میکنه و میره رضا برمیگرده طرف گلدو بهش لبخند میزنه سرش سرشو پایین میندوزه احسان از روی حریه پشت بوم دولا شده طرف حیات دور فکر میکنه رضا روی صندلی دور از گلدو نشسته و معصب بهش نگاه کنه. یار و مضطرب و با انگشتاش بازی میکنه مادر مایه کوکو سبزی رو میریزه تو مایه توبه دوغ با کفگیر چوبی خوب صافش میکنه تمام هوش و حواسش پیش رضا و یلده است. مادر از لابلای پرده تسبیحی اونا رو نگاه میکنه اونا تو سکوت نشستن. مادر مایوس و نگران برمیگرده سینی رو برمیداره سبد کاهو و خیار و گوجه و هویجو میذاره تو سینی میاد روی پله میشینه و سرک میکشه تو پزیری چهره رنگ پریده و مصطربه یاندو رو میبینیم که چشم دوخته به رضا. رضا از روی میز نهارخوری از توی سبد یه دونه از مجسمه ها رو برمی‌داره و نگاه میکنه و میگه: چقدر اینا قشنگن. اینو عزیز کرده‌هاشون شدن شوشینشون؟ نه اینا نوبت حمومشون یه روز در و بینشون فرق نمی‌ذاره ماخه. فرق فرغوزه این اعتراض میکنه بله. اعتراض می‌کنه. بعد همت کلی وجون حرف می‌زنم که آروم بشه. بله مادر در حالی که خیار پوست میکنه گوشش اونجاست شوخی کردم شما واقعا باورتون شد من با اینا حرف میزنم آره خب من وقتی آدم گرفته است با در دیوار و دیوار اتاقم حرف میزنم واقعا میگی همه اینجوریه اونطور هر کی فکر کنه خودش با بقیه فرق میکنه نه همه مثل همین شما میدید من اصلا بیرون نمیرم یعنی اصلا هیچ جا نمیرم همیشه اینجا بر اینا صدا میده یه جوری آدمو نگاه میکنه نگار آدم حالش بد میشه حساس که آخه یه لحظه کلی سرشو در میاره دست به سینه من خوبم یکم عادت ندارم زیاد به ادمو حرف بزنه من خوب میشم هیچی نیست همیشه متعجب نگاش میکنه ایسون تو بالکن فندکش رو روشن میکنه و سیگاری میکشه و همچنان تو فكره آدمم بخندم شما ناراحت میشین دیگه به من بخندی؟ هم. چرا؟ خب مشکل به این کچیکی و گندش میکنی خنده دیگه به خاطر صدای عصا نمیری بیرون ببین تو اکی بخواه اصلا عصا رو میتونی بذاره کنار چرا نباید بری بیرون؟ اتفاقا تو با خیلی دخترهای که من میشنستم فرق داری؟ تو خیلی دختر میشنستی؟ حالا نه که کامل بشناسم بالاخره آدم ببینه دیگه تو جامعه یه چیزی بگم خیال آدم باید خیلی شانس پیار با دختری مثل تو زندگی کنه خیلی مادر در حال خورد کردن خیار به صحبت‌های اونا لبخند میزنه با شما خندی دیده خب بله یعنی نه, نه یه دفعه شد من خوندم احسانم زبکی <تصفح> ریزو بلند میشون میره پیش یلدو رو کانپه میشیه کیف پولشو باز میکنه و میگه اینا تو مثل خواهرم هستی این اکسی نام زدم یه ما دیگه میخوایم وزده باشو کن خوشکش میزنه اکسو نگاه میکنه بسترد میشه کیفو میبنده کنار ایرانیت سخف پنجره آشمازخونه گنجیشکی لونه کرده احسان به اون نگاه میکنه ناراحته خوب گوش میده حواسش پیش رضا و یلداز مادر غمگین؟ سرشو پایین انداخته سرش رو بالا میکنه و تو پذیرایی رو نگاه میکنه چی شد؟ یلده خانم یلده خانم ببخشید من باید برم آقا رزا کجا؟ احسان احسان بلند میشه میره طرف پذیرایی رضا کجا نمی‌تونم مادر خدا فیزیکی کرده نکرده گذاشتم این دختره رفته تو تابش دست دست یلدا یلدا جان یلدا مادر در باز کن یه تلفن بزن ببین پسری کجا رفت دارم اون کارو می‌کنم یلدا یلدا این دارم بسته نکنو بلای سر بچه‌م اومده باشه چی میگی مامان جان این کارو بکن یلدا یلدا جون منم مادر نمی‌تونم بشونمش چه شروع می‌کنی هیچوقت شوخی بزنی ببینم بچه‌م گفت یلدا یا درم باعث میکنم جانو داره رزا عروسی میکن خب عروسی کنم اما برم دست شوی یلده میره ترقی دست شوی مادرها احسان میمینن احسان میره خودشو برداره احسان جان مادر میخوای بری بگی آقا رزا برگرده نه پس کجا داری میری؟ داری سینما این تو اینجوری خواهر مادر تو مسخره کردی مامان من نمی دونستم داره عروسی میکنی شروع نکن آره تو گفتی منم باورم شد دو سال همه جی کپو هم دیگر رو میدونید وقت نمی دونستی داره عروسی میکنه نه گفتی یک شما همینجوری دوت کنم من درم رو ببندم فکر, فکر من رو نکردی اگر فکر رو خود آجزت من نمیدونستم مامان بعدم اون کسی که فکر یلا رو نمیکنه کنه توی باک. شوانه چون میگم که فکر خوشبختیه تو غارتام این نتیجه فکر تو دیگه همین امروز صد دفعه امروز گفتم گفتم نکنین تاقت نمیاره میریزه به هم گوش نکردی بدتر کردی گفتی چون اون رفیق ناکس تو میشناختی تو این دور زمان پسرای سالم دختره سالم رو نمیگیرن چه رس به شلو خفشو دهنتو ببند به, به خدای یک بلای سر اون رفیقت بیارم مرغیاستون به حالش گیره چرا چرا؟ میبینی؟ یلدا جان مادرم آخه مگه ما جان مگه رضا میتونسته مگه میدونسته ما دعوتش کردیم بیاد مادره. خواستگاری اون فکر که شم میخواد می می بیاد شما مادرم مامان مادره. اون کسی که باید رو بگیری خودتی برای که با این کارو داری دیوانمون میکنی گمبه در دستشوی رو باز میکن مامان جان جلو دلم من نام زد رضا رو عکسش رو دیدم خب ریزا گفت میره باش تموم کنه گفت چون من تو خیلی به می میخواه فقط اینکه من میگم که دختر گناه نداره قربونت برم حال تو آروم باش بخواد دو چرا اینجوری نگاه جوری نگاه نمی قربونت برم فکر کنه من دارم دروغ میگم نه عزیزم چرا دروغ بگی؟ بیا بریم الان برات غذا درست میکنم بعد تو قضا میخوری بعد که بخوابی با من تلفن ببر ببین میشه جرا احسان باشر من خودم تلفون رو برمیرم تو من این برم خواهد میدبر گفته همینی میخواه احسان سیم تلفون از توی پذیرایی نیکنه اموده بگردی میره تو اتاقا شده رو میبرد مادر آجازانه گرگره کنه میاد رو کناپه میشینه احسانم میاد کنارش میشینه میدونی از این همه بدبخته چجوری خلاص میشین ماهان احسان برمیشه میره مادر باز کرد و میمونه احسان رو میبینیم که تو اونجای همیشگی روی بلندی ایستاده و شهر رو تو شب نگاه میکنه و سیگار دود میکنه پسر جوان با خودش فکر میکرد تو اون لحظات چقدر شبیه پدرش شده انگار فرار کردن از زندگی بهش عرص رسیده بود احساس عجیبی داشت مطمئن نبود واقعا اون شب از اون خونه بیرون اومده یا نه اتفاق پشت سر هم انقدر ساده و بی کنار هم چیده شده بودن که نمیتونست تشخیص بده کدوم یکی واقعی و کدوم یکی رو ذهن خودش ساخته حس میکرد چیزی رو تو فضای اطرافش گم کرده فقط از یه چیز مطمئن بود. اینکه دیگه امکان نداره به اون خونه برگرده امکان نداره مثل هر روز صبح رو کاناپه وسط سالن بشینه و به فرار کردن فکر کنه این تنها چیزی بود که باعث می شد بتونه مرز بین واقعیت و رویا رو اصلا تشخیص بده زیر صدای احسان یلدو رو میبینیم که پرده تسبیه رو کنار میزنه با شیردوخ کنه حلبی گلدونه خونه رو آب میده. یلدو همچنان به گلدونه آب میده که یهو شیرده کنه حلبی از دستش میافته یلدو مادر یلدو جان مادر یلدو چی شد خدا احسان مادر که به دیوار تکیه داده بود و لحافی روی پاهاش کشیده بود یهو متوجه میشه به طرف یلدا میره یلدو روی زمین از هوش رفته احسان از پله ها پایین میاد و میره طرف اتوبوس مستعسل و همش این طرف اون طرفو نگاه میکنه مادر تلفون با خودش میاره یک گوشه ای و به موبایل احسان زن میزنه با ناراحتی یه دستش رو مشت میکنه و میذاره رو پیشونیش احسان جان مادر یه خوب نیست بیا پیشمو صدای مادر رو از پخش بلنگوی موبایل احسان که تو اتوبوس در حال حرکته میشنویم. احسان چشمشو بسته. اینقدر خفه میشه. پنجره اتوبوس با زحمت باز میکنه و به بیرون خیره میشه. صبح شده. احسان تو خونه است. روی کاناپه ترنبات میزده. به پرده‌ی تور سفید خونه که تو باد تکون میخوره خیره شده. انگار هزار بار تصمیم گرفته خونه رو ترک کنه اما هر بار برگشته مادر تو آشپزخونه با چاقو نون تافتونو میبره و به تیکیه های کوچیک تقسیم میکنه چایی میریزه احسان جان یه جوری به زبون بگیرش حتما دو سه تا لقمه بخوره چشم. من منم میرم مرخصی ساعتی میگیرم برای ناهار برمیگردم مرغ هم گذاشتم بیرون اگه بخوره تو این دو هفته که ساپرام اگه بشه یه روز درمیون بریم سر کار خیلی خوب اینجوری هر روز یکی پیشش میمونه دیگه قضیه خوهر تو که نگفتی سر کار نه گفتم مادرم مریض خوب کردی دوست ندارم مردم علا که پشت سر حرف بزنن احسان رازیش کن بخوره ها لقمه رو میگه بیای اینو بخور بخور دیگه غربونت برم یلا یالا با رنگ روی این میت همچنین به لغمه نگاه میکنه که انگار چیز خیلی عجیب و غریبی دیده نمیخوره دولا میشه تلفن رو بر میداره چهار دست و پا میره و میشینه میخواد شماره بگیره احسان گوشی رو میذاره یالا, جا. یالا. یه دقیقه ببین یه دقیقه یه دقیقه یه دقیقه آنو بدم ها یه دقیقه احسان لقمرو میذاره تو دهنی یلدا بیا نه بیا اینو بخور همینه بیا من نگاه کن یه دقیقه من نگاه کن یلدا جان من نگاه کن همینو خی نمیشه هیچی نخوری جانه حسان یلدا آروم لقمرو میدروه سرشو کم کم به طرف تاخته بلند میکنه حالا تاو میگیره لقمه رو قوف میکنه تو دست احسان یال دو دوباره چهار دست و پا میره تو چشمای احسان پر از اشکه احسان پرده رو کنار میزنه میاد طرف مادر مادر گریان روی پلن نشسته خب. هیچ چیز خیلی خوب, نخواه. خوب. چی اصلا نمیخواد نخوره خب بیا چیکار میکنم من الان اصلا یه لقمه دیگه برات میگیرم مادر در محل کارش سراب با حرص خوتیه لوبیا رو تو جاش میذار و میگه تاریخ تمام روزایی که از من پول گرفتی اینهاش اینجا نوشتم پول گرفتی جم کارت نزدی بخاطر گندی که زیدران اخراج میکنن تازه بهت میگن بالای چشت ابرو به جای منزادخواهی داری مثل سک پاچه میگیری چند بار بهت گفتم یه نصرفانش خوب نیست بعد ازش با را کنه. این چند روزم که نیومدم چات‌پوستم به خاطر همین بوده. من ازت چند دروغ گرفتم پول دستم بیاد همشو بهت میدم. بعدم سگم همه کیسو کارته که اینجوری باچه میدید. چه چه چاره بیاد بعد قصر نمیگردم ببینم چه میتونی بخوری. 15 روز درم چورم میدم ایش گلم چی شده؟ الان بگی چی شده. هیچکی نگفت اون از چودرش رو سر میکنه از در محل کارش میزنه بیرون دار چهار دست صبح با تلفن میره بیرون از اتاقش یلدا با تو هم میگم اینو برای چی کندی از دستت منزونش می. چی میخوای؟ ها؟ میخوای اینجا بخواهی؟ ببین اینجا بخوام من دوباره اینو بزنم به بغسته آره نگاه کن ببین قرونه دارم این بعد تا این تهمی اومده نگاه کن تا کجاست بعد بیاد تا اینجا اینجوری که نمیشه که نه یلغمه قضا میخوره اینم نمیذاری به این با دستت چیکار کردی اللا. دارم بعد حرف میزنم اینجوری ضعیف میشه نمیتونی رو پات وایسی برای چی گوش نمیدی حرف من دارم بعد حرف میذارم بس کن دیگه اصلا نمیخواد بلش نکن دیگه بس کن ای گلدام میکوبه تو سر و صورت احسان بیچاره احسان سیگار داری؟ شب مادر و احسان تو بالکن نشستم اون روز که گفتی درز همه پنجره ها رو ببندیم بعد شیر گاز باز کنیم جدی گفتی نه من حالا خوب نبود همینجوری یه چیزی گفتم مادر و احسان به همدیگه نگاه میکنن در واقع به بدبختی خودشون نگاه میکنن هر دو سرشونو پایین میندازند یلدو رو تختش خوابه خواب که چه کنم. كنم انگار از هوش رفته احسان دمر روی کاناپه خوابش برده مادرم رنگ رو پریده سر جاش خوابیده یلدو چراغ رو روشن میکنه و با عصا به سمت مادر میره کنارش میشینه مادر، ما تو مبهود نگاش میکنه مامان مامان مامان فیدارش مامان رزا زنی زد گفت با نامزدش به هم همزد فردم خود بیاد با شما صحبت کنه با شما احزان ماما خیلی کشت بیا بیان بیان با همه ای چیزی بخوی گلده میره احسان جان رزا زنی تو بیدار شدی جان چی؟ احسان جان ماما چی مامان جان چیه؟ جان. جان نه ماما ببین من من فردا میرم براشی دشتر رو خوب پیدا کنم نکنی اینجوری فقط تو تا رو خود بارو گرم کن باخره. احسان میره مادر که بغز زده هست بغزشو نگه میداره داره خفه میشه به طرف حمام میره در حمامو باز میکنه آروم تو دست شویی هق, هق میزنه احسان در خانه رو میاد تو کوچه ریزا سلام احسان خیره خیره با تعجب نگاش میکنیم میدونم از دست من نارایتی دی. دیشب زنگ زدم باید حرف بزدم زنگ زدی؟ آره خوارت گوش بیبردش دیشب زنگ زدی ساعت یک و دو آره ببینم باید بایدون حرف بزنم اینجا سخته من. ریسا توش بس به مادر میگه اون روز نتونستم با اله خانم درست حرف بزنم تا از نام زدم گفتم حالش بد شد گیری کرفت تو اتاقش من روزش ترسیدم به اون حالش تو رو شما نگاه کنم گفتم نکن دروگی من بد فکر کنم میگم خب یلده با همه فرق داره خیلی حساسه خیلی مهربونه دقیقا همین چیزایی که تو این روزا یه ذره هاشم به زور پیدا میشه تو این دو هفته هی می‌خواستم بیام باهاتون حرف بزنم ولی حقیقتش روم نمیشد اخو احسان یه شب من دعوت کرد برای شام آدم من میومدم میگفتم که از خارط خوشم میاد مگه میشه آدم همچین چیزی راحت تو رو کسی بگه من نام زدم و مادر هم پیدا کرده بود توی مجلسای زنونه اونم هم که بگم آدم بدی بود از جنس من نبود به هم نمیومدی این که به هم زدم من میخوام یلدارو از شما احسان خواستگاری کن اگه خودش بخواد احسان و مادر خوشحال نمیشن مادر رزا رو نگاه نگاه میکنه و میذاره میره احسان و رزا تو سکوت میلن رزا انگار مجبور شده که این چیزا رو بگه ولی در ظاهر راضی به نظر میرسه احسان هم میره رزا ناراحت میانه مامان احسان چشه مامان ببین حالش خوب نیست بهش میگم دارم تو بقالی و بهم گرفته ساعت منم باش کرده. میگم چرا نمیری سر کار میگم میخوام بمونم پیش تو تو خوبی؟ ببین بایی سر باش حرف بزن هفته بهش باشم من میرم شیر بگیرم مادر توشمس خونه برای ریزو چای میریزه دیدی مادر چقدر بهتر شده؟ منم میرم باش حالا میخوای قضیه فعلا آم. مادر جوابی نمیده خوب شده نه آره از توی قوطی قند یه مقدار قند توی قندون میریزه در شیشه کوچیکی رو باز میکنه و چند پولکی داخل قندون میریزه رو پر میکنه در شیشه و در قند قندون میبنده مادر که همچنان است نگاهی به رزان قندون قندونو خیلی سرد روی میز میذاره خیالتون راحت بشه من موازه بشه اندازه خود شما بیچ حرفی میذاره میره رزا آرام و مبقر میره تو فکر ام. مادر قابلمه قرمه سبزی رو با ملاقه هم میزنه در قابلمه رو میذاره سبد برنج صاف کرده رو زیر شیر آب میگیره از صبح رفته بودیم خرید عروسی گفتم تا بچه ها چند جایی دیگر رو می منم بیام قضا رو بزارم. مبارکه حالا خبرش از کجا شنیدی؟ اوه همه کارخونه رو میدونم آنا دیگه اون جماعت فزول فریده جان منو ببخش اووز خیلی تول شدن خدا خداابر شاید با شوهرم دوام شده بود حالا یه غلطی کارداد دیگه تو این خهرم میمونیم ای من قرگ همه زنات فرول رو همدیگه دیگه عروسی یلد کادو خریدن. نصفم خود مهندس تو داده. خبر یداری که پش کرده تو کارخونه خودم من دستتون درد نکنه در جو رو بروس میکنه من امروز به همشون شیف. پوش دادم ای بابا زیاد سخت نگیر الان وقتی عصبانیه به خودشم فش میده مهندس ترابی گفت بیای کارخونه فقط ببینت باد کار داره کارخونه که باید بیام باید بیام ازشون تشکر کنم و اون طفلک و وضعیتشون بهتر از من نیست که مبارک باشه. مبارک که دستتون در نکنه مبارک باشه. مادر و سارا تو کارخونه به همه شیرینی تارف می کنن. صدای موزیک میاد بالا مادر همچنان به همه شیرینی تارف میکنه. کارکنان تشکر میکنند و شیرینی برمیدارند حالا مادر چدر به سر پشت به ما با گام بلند از جده کارخونه میگذره. احسان تنها تو سینماست جدی و غمگین به فیلم چشم دوخته. فیلم تموم میشه چراقه سینما روشن میشه برای اولین بار میبینیم سینما پر از جمعیته مردم کم کم سینما رو ترک میکنند اما احسان همیتون ما اونجا نشسته به مردم نگاه میکنه و تو ذهنش میگه کسایی <تصفيق> که پشت سر هم یه فیلم و دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد وقتی هنوز شخصیت یه فیلم تو زهنت زندن و دارن نفس میکشن میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی میتونی باهاشون حرف بزنی میتونی توی صندلی سینما فرو بری لحظه‌ای که چراغا خاموش میشن معجزه اتفاق میفته. درست تو ای که حس کنی هیچ راهی برای فرار باقی نمون مهم فقط اینه که با همه ی توانت بتونی ادامه بدی. همه چی درست است همینجا شروع میشه. پرده ی سفید سینما رو بینیم حلقه فیلم روی قرقرۀ میچرخه. دستی حلقه فیلم رو داخل دستگاه می‌ذاره و فیلم رو رامیندازه. پرژکتور روشن میشه یلدو رو میبینیم که در حالت نرمال و عادی با شال قرمز خوش رنگ پشت میز نهار نشسته و داره لیوانا رو با دستمال برق میدازه روی میز سالات، سبزی خوردن، بوشقا و بقیه مخلفاته یلدو آروم و با احتیاط از کنار میز بلند میشه و لیوانا رو با سلیقه میچینه یلدو سیخای جوجه و گوجه نپخته رو که روی سینیه از توی خونه میاره. رزا تو حیات پسری یکی دو سالشونو بغل کرد و داره با باد بزنه هسیری منقل و باد میزنه. یلده در حالی که قربون صدقه بچه میره بچه رو بغل میکنه. و خوشحال و رازی آروم آروم میره طرف مادر. مادر شادمان اونجا روی تخت نشسته. چند قطره از شیشه یه شیر بچه رو رو دستش و اونو به و بده. یلدو به بچه میگه به بخور عزیزم احسان اون طرف حیات تنها روی صندلی نشسته لیوان چای نصفش تو دستشه با رضایت به اونا نگاه میکنه کم کم لبخند شیرینی روی لبهاش نخش میبنده رزا به طرف یلده و مادر میاد و بچه رو از بقل یلده میگیر و چند بار بالا میندازه. مادر و یلدو با هم گپ میزنن رزا بچه رو میده به یلده و میشینه کنارشو با هم گل میگن و گل میشنفن صورت احسانو از نمای نزدیک میبینیم که به اونا نگاه میکنه و از شادی اونا شاده اما کم کم شادی تو صورتش محو میشه رنگش میپره عین میت و تبدیل به بهد و ناباوری میشه شنوندگان عزیز و فرهیخته‌ی رادیو فیلم خسته نباشیم شما فیلم اینجا بدون من به کارگردانی بهرام توکلی رو شنیدید اجازه بدین همکارانم رو خدمتتون معرفی کنم جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار جناب آقای فرشاد آزرنیا تهیه کننده و بنده فریبا طاهری که گویندگی و تنظیم این فیلم رو به عهده داشتم در سیم خدمتتون عرض کنم که اگر پیشنهاد یا انتقادی دارین میتونین با شماره پیامک 3001075 و با شماره تلفن 36913666 و, و, و, و, و, و همینطور سایت ما radio-namayesh.ir تماس بگیریم. قبلا از بذل توجه و عنایت شما بی نهایت سپاس سپاسگزارم. پیروز و سربلند باشین و خدای یار و نگهدارتون.